گوینده فرید حامه گروت بر دوستان جان یاران همراه عزیزان و علاقمندان به داستان‌های شاهنامه یکیم عبول فردوسی فرید حامد هستم و با داستانی دیگر از مجموعه داستان‌های شاهنامه ی فردوسی در خدمت شما عزیزان از این برنامه میخواییم داستان سیاوش یکی از زیبا ترین و به یادماندنی ترین داستانهای شاهنامه رو براتون تعریف کنیم پس با ما همراه باشید. سیاوش فرزند کیکاووسه و داستان زندگی سیاوش و سرنوشت اون یکی از شاهکارهای فردوسی در شاهنامه است سیاوش نماد پاکی و معصومیت و سرگذشت دردناک اون در تاریخ ادبیات ایران و حتی در تاریخ فولکلور ایران جایگاهی بسیار بلند و ارزشمند داره داستان از اینجا شروع میشه که یک روز توس و گیو پسر گودرز به همراه گروهی از سواران برای شکار به منطقه در نزدیکی مرز بین ایران و توران میرن در حین شکار صدای ناله و زاری رو از لای بودته ها میشنوند و این صدا توجه اونها رو به خودش جلب میکنه به سمت محل صدا میرن و می‌بینن زن جوانی در لای بودتها پنهان شده و داره عشق میریزه هر دو از از پیاده میشن و به سمت زن جوون میرن و از اون میپرسن که چه اتفاقی افتاده اینجا چیکار کار میکنی و چرا داری گریه میکنی زن جوون میگه از حالی توران زمینه و دیشب پدرش در حالی که مست بوده میخواسته اونو با خنجر بکشه برای همین فرار کرده توی راه اسبش به دلیل سرعت زیاد و فشاری که بهش اومده از تاب و توان افتاده و از دست رفته بعد مجبور شده پیاده به راه ادامه بده و در راه با راه زنها برخورد میکنه و اونها هم هرچه که تلاو و رالات و دارایی همراه خودش برداشته بوده ازش میگیرن و اون هم باز فرار میکنه و پای پیاده خودش رو به اینجا یعنی مرز بین ایران و توران میرسونه. زیبایی زن جوون توجه دو سردار و پهلوان ایران رو به خودش جلب میکنه و بحثی بر سر اینکه کدومشون میتونه با این دختر زیبا ازدواج کنه بینشون در میگیره. بحث بالا میگیره و در نتیجه و حاقبت کار به این نتیجه میرسن که میریم سراغ پادشاه کیکاووز و هر چی که اون گفت همون کارو میکنیم اصبی به دختر میدن و به همراه سواراشون به سمت پای تخت ایران و قصر کیکاووز حرکت میکنند قافل از اینکه جناب کیکاووز با دیدن زن جوان و زیبا آشق و باخته اون میشه و به دو پهلوانش هم میگه که من در اولین زمان مناسب با این دختر ازدواج خواهم کرد دست شما هم درد نکنه که اون از دست راه زنها و پدر دیوانه و مستش نجات دادید خلاص ازدواج سر میگیره و این خانم جوان به عقد کیکاووس در میاد یک سال از این ماجرای ازدواج میگذره و زن جوان پسری به دنیا میاره پسری بسیار زیبا قوی که اسم اون رو سیاوش میگذارند کیکاووس باز شنیدن خبر و حمل احمل و پسردار شدنش بسیار خوشحال میشه جشن و سروری به راه میندازه و بین مردم هم هدایا و وسله و این چیزها تقسیم میکنه و بعد از مدتی که پسر به سنین طفولیت میرسه کیکاووس سیاوش رو به دست رستم میسوره و بهش میگه که مسئولیت تربیت این پسر رو به تو می سپرم. رستم که بعد از ماجرای مرگ سهراب بسیار اندوه گین بوده با کمال میل سیاوش رو قبول میکنه با خودش به سیستان میبره که محل حکومت زال و خاندان رستم بوده در اونجا رستم تمام فنون رزم، شکار، شمشیرزنی، اسبسواری سواری و آنچه که مرسوم آن زمان بوده به اضافه فنون و راه و رسم پادشاهی و بزرگی رو به سیاوش یاد میده تا سن 14 سالگی سیاوش نزد رستم میمونه و آموزش میبینه و در تمام فنون نظامی و رزمی بی همانند میشه هیچ قادر نبوده در شمشیرزنی و سوارکاری و چوگان که ورزش مورد علاقه و محبوب ایرانیان در اون زمان بوده با اون رقابت کنه یکی از روزها سیاوش برستم میگه که میخواد به پایتخت بره و حالا که بزرگ شده و هنری پیدا کرده در رزم و شکار و ورزش این هنرها رو به پدرش نشون بده رستم هم قبول میکنه و با هم به سمت پایتخت حرکت میکنند کیکاووس از شنیدن خبر اومدن پسرش خیلی خوشحال میشه و از رستم هم تشکر میکنه و چند روزی رو به عیش و نوش و جشن و سرور رو مهمانی میگذرانند و در نهایت هم هدایای بسیار نفیس و گرانبهایی رو تقدیم رستم میکنه به پاس زحماتی که رستم برای تربیت سیاوش کشیده و رستم پای تخت رو ترک میکنه و سیاوش نزد پدرش میمونه چند سالی به آرامی و بیهادزی میگذره تا اینکه مادر سیاوش در اثر یک بیماری فوت میکنه و سیاوش دوچار غم و اندوه بسیاری میشه و دوران بسیار سختی رو تو هم با افسردگی سپری میکنه و در این مدت گیو و گودرز که از پهلوانان بزرگ ایران بودند، و سایر پهلوانان ایران در کنارش میمونن اونو دلداری میدن بهش قوت قلب میدن تا بتونه با این مصیبت و این غم کنار بیاد یکی از روزها که طبق معمول سیاوش به قصر پدرش میره تا در مورد مسائل حکومتی و مملکتی با هم صحبت کنن سودابه همسر دیگر کیکاووز وارد تالار قصر میشه و با دیدن سیاوش که جوانی بلند بالا، زیبا و خوش اندام و خوش قوامت بود دلش به لرزه میفته داستان این سودابه خانم خودش یکی از سبک ها و کارهای احبلهانه جناب آقای کیکاووس بوده که داستان مفصلی داره و در جای دیگه و در موقع خودش به اون میپردازیم اما همین بس که زنیست بسیار اهل دسیسه و حیلگری خب برگردیم به داستان سودا به گرفتار عشق و هوس شومی میشه و سعی میکنه با دسیسه های مختلف و راه های دامهایی که پهن میکنه سیاوش رو به دام بندازه اما سیاوش که دست پرورده رستم بوده و مظهر صداقت پاکی و درستیه تسلیم این وسوسه ها و کارهای ناپسند نامادری نمیشه. سودابه سودا به که می بینه تمام نقشه ها و راه هایی که در پیش میگیره نقشه براب میشه و سیاوش به این راحتی دم به تل نمیده و اهل خیانت اون هم خیانت به پدر نیست باز نقشه جدیدی می کشه و سعی می کنه اینجوری وانمود کنه که این سیاوشه که با اون نظر داشته و نه اون و کیکاووس سبک سر مغز هم دچار این وسوسه میشه که مبادا سیاوش که جوانه و دلیل و خوشقد و قامت و بسیار زیبا عاشق همسر و نامادری خودش شده باشه و کدورتی و شکی بین پدر و پسر ایجاد میشه آتش این کدورت رو سودابه با مظلوم نمایی و با اون سلاح مخوف زنانه یعنی عشق ریزی و مظلوم نمایی تیزتر میکنه تا اینکه که کاووس رو متقاعد کنه که سیاوش به اون نظر سوء داشته در نهایت سیاوش برای اثبات بیگناهیش آزمون سختی رو که موبدان برای آشکار شدن حقیقت و اثبات بیگناهی تعیین میکنند میپذیره عبور از دل آتش این یکی از آینهایی بوده که ظاهرا در گذشته برای اثبات پاکی و صداقت مورد استفاده قرار می گرفته و در مورد سیاوش هم معروفترین داستان این آزمون همین داستان سیاوشه سیاوش میپذیره و ترتیب میدند که آتش بزرگی رو به صورت یک گذرگاه آتشین با حیمه و هیزم فراوان درست کنه سیاوش لباس سفیدی بیپوشه بر اسب سپیدش سوار میشه و آماده گذر از آتش موبدان و سربازان هیزمهای جمع شده و آغشته به روغن رو به آتش میکشند و آتش از هر سو زبانه میکشید و هر کس میخواست به آتش نزدیک بشه احساس میکرد که دردم ممکنه کباب بشه اما سیاوش سوار بر اسب در لباس سپید به تاخت از دل آتش عبور میکنه دل ای در جمع میفته که آیا میتونه به سلامت از این آتش عبور کنه یا نه بعد از گذشتن چند لحظه همه با شگفتی می بینند که سیاوش سوار بر اسب سپید در اون لباس سپید زیبا به سلامت از بین آتش عبور میکنه و دوری میزنه و به نزد پدر برمیگرده موبدها هم باور میکنند و به کاووس میگند که پسر تو بیگناهه و اگر دروغی یا دسیسهی بوده باید از جانب سودابه باشه نه از جانب سیاوش چرا که سیاوش از این آزمون سربلند بیرون آمد و اگر میخواهی بدونی که آیا سودابه هم راست میه و دروغ و دقلی در کارش نیست باید که از این آزمون اون هم بگذره ماجراهای بسیاری اتفاق میافته و باز هم حیله ها و دسیسههای سودا به کار ساز میشه از یک طرف و از طرف دیگه هم سیاوش به پدرش میگه که گذشت کن و ندیده بگیر اونچه که اتفاق افتاد مهم اینه که تو بدونی من نظر بدی به همسرت نداشتم و به هیچ کس نظر ناپاک ندارم همین که تو به صداقت من باور داشته باشی و ایمان بیاری برای من کافیه خب دوستان، بخش اول از داستان زندگی سیاوش رو شنیدیم ماجرا تازه از این به بعد داره شروع میشه و ادامه این داستان رو به برنامه های بعد مکن میکنیم امیدوارم با شنیدن این داستان تشویق بشید به خواندن شاهنامه فردوسی و دنبال کردن داستان زیبای سیاوش در شاهنامه با آن بیان شیوای جناب فردوسی و در ضمن همان خواهش همیشه رو ازتون دارم که با انتقاداتتون، پیشنهاداتون و نظراتتون ما رو در بهتر شدن این برنامه یاری کنید. تا برنامه دیگر و بخشی دیگر از داستانش سیاوش همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. روز روزگارتون بکن.